سلام دوستان سلام به شنونده های عزیز داستان این قسمت گل های جادویی یکی بود یکی نبود تو یک شهری دختر زیبایی بود که پدر و مادر نداشت اما سه تا برادر داشت که این برادرها ازش نگهداری میکردن این برادرها و خواهرشون جادوگر بودند منزل اونهای قصر بزرگی بود که باخچه کوچیکی توش بود تو این باخچه گلهای جادویی گلهای سهرامیز کاشته بودن که دوای هر دردی بودن کسی هم نمیتونست به اونا دست بزنه چون اگر کسی دست میزد بقیه ی گلها شروع میکردن به داد و فریاد کردن برادرها هم همیشه موازه بودن که کسی دست به این گلا نزنه از غذا تو این شهر جوانی بود که با پدر پیرش زندگی میکرد و غیر از پدرش کسی رو نداشت. چشمای این پیرمرد هم روز به روز ضعیفتر میشود تا اینکه بالاخره بینایی خودش رو کاملا از دست میده. هر قدرم که دوا و درمان میکنن فایده نداشته. روزی جوون پدرش رو پیش فالگیر میبره. فالگیر میگه پدرت هیچ جور خوب نمیشه الا مگر اینکه یکی از اون گلا رو که تو قصر خواهر و سه تا برادر هست بیاری و به دستش بدی. جوونم میدونست که نزدیک شدن به این گلها مشکله فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره چاره‌ای به خاطرش رسید. با دو تا تیکه چوب دو شاخه درست میکنه و شبونه به طرف قصر میره. میره و میره تا به باغچه میرسه. از پشت سیمهای خاردار با همون دو شاخه چوبی بی سر و صدا یکی از گلارو میچینه و به خونهشون بر گل رو به دست پدرش میده و چشم پدرش هم خوب میشه. از اون طرف. صبح که شو دختر مثل همیشه به باخچه میره ولی یک دفعه جیغ بلندی میکشه و فریاد میزنه ای برادرای بی عرضه من کجاییت هر سه برادر با سرعت خودشون به خواهرشون میرسونن. میپرسن چی شده؟ چه خبره؟ خواهر میگه نگاه کنید. یکی از گلا کم شده. کسی اومده اونو چیده. ببینم شما صدای گلا رو نشنیدین؟ برادران میگن نه. ما که تا صبح کیشیک میدادیم و صدایی نشنیدیم. دختر به برادراش دستور میده که هر کدومتون به یه شهر میرین و هر طوری که شده کسی که گل چیده پیداش میکنید. برادرها را افتادن برادرهای اول و دوم هر کدومشون به یکی از شهرهای نزدیک رفتن اونا هر چقدر گشتن چیزی دستگیرشون نمیشه اما برادر سومی تو شهر خودشون میگرده اون همطور که داشته میگشته و میگشته به یه جایی میرسه که عروسی بوده وارد جمعیت جشن و عروسی میشه و اتفاقا پسر همون پیرمرد هم تو عروسی بوده برادر کوچیک بعد از مدتی از آدمایی که اونجا بودن میپرسه کسی میتونه یکی از گلای اون فلان قصر رو بچینه بیان که اون گلا سر و صدا رو بندازن پسر پرمحت میگه که من میتونم برادر سفهمی به پسر میگه بیا بیرون یه کاری باه دارم همین که با هم بیرون میرن برادر کوچیک که جادوگر بوده اون جوان رو به صورت یه سیب تبدیلش میکنه و توی جیبش میذاره و به طرف قصر راه میافتند. به نزدیکی قصر که می رسن سیبا از جیبش بیرون میاره و دوباره به همون جوون تبدیلش میکنه. ازش میپرسه تو کی هستی؟ برای چی یکی از گلای قصر رو چیدی؟ جوان تازه میفهمه که هم همصحبت یکی از سه تا اون صاحب قصر بوده. بهش میگه راستش رو بخوای مدتی بود که چشم پدرم نمیدید. برای همه یکی از گلا رو براش بردم که تا چشمش خوب بشه بعد از بردن گل الحمدلله چشمش خوب شد و حالا میبینه بعد در سومین پرسه چجوری تونستی گل بچینی؟ خودت که میدونی اگه کسی به اون گلا دست بزنه بقیه گلا ما رو خبر میکنن پسر پیرمرد میگه با دو تیکه چوب این کار رو انجام دادم چوب هم وقتی به چوب نزدیک بشه سر صدا نمیکنه برادر سفومی با شنیدن این حرف تو دل خودش به پسر پیرمرد آفرین میگه و اونو به قصر میبره به قصر که میرسن ماجرا رو به دختر میگه دخترم با دیدن پسر پیرمرد و شنیدن کاری که کرده بود یه دل ن دل عاشق پسر پیرمرد میشه پسرم هم همینطور دختر که خیلی دل باخته شده بود رو به برادراش میکنه و میگه دیگه با اونا کاری نداره میتونین دنبال کار رو خودتون برین دنبال زندگی خودتون برین. بعد هما پسر پیرمرد ازدواج میکنه. چند از ازدواجشون میگذره روزی پسر پیرمرد رو به زنش میکنه و میگه که میخوام برم شکار. زنیش میگه خیلی خوبه چون از وقتی ما با هم ازدواج کردیم هیچ کاری نکردی بهترین کار همینه که به شکار بریم. جوون به زنش میگه چون ممکنه رفتن اومدنم طول بکشه یکس از خودت بکش. بده تو, تو جیبم باشه و هر وقت که دلم برای تنگ شد عکسو نگاه کنم. دختر که میدونست این کار خوبی نیست و ممکنه اتفاقی بیفته در جواب پسری میگه این کار خوبی نیست چون عاقبت بدی داره اما شوهرش اصرار میکنه زنم ناچار قبول میکنه عکسی از خودش میکشه و به شوهرش میده. جوونم رو توی جیبش میگذاره و میره. فردای اون روز جوان دلش برای زنش تنگ میشه. عکس رو از تو جیبش در میاره تا نگاه کنه. اما اما از بد روزگار باد شدیدی عکس ها دست اون میگیره و میبره. جوان هر کاری میکنه نمیتونه به عکس برسه. باد عکس رو میبره و میبره و میبره تا تو یک جایی به زمین میفته. اتفاقاً عکس به دست یه ساربان میفته. جوان که دنبال عکس میرفته به ساربون میرسه ازش میپرسه امو تو عکسی ندیدی ساریبوۨ میگه نه من ندیدم برو بگرد تا پیداش کنی جوونم حرف ساربون رو قبول میکنه و به راهش ادامه میده اما هرچه قم میگرده اثری از عکس پیدا نمیکنه که نمیکنه بلاخره ناراحت و افسرده و غمگین به قصر برمیگرده زنش که میبینه اون انقدر نراحته میپرسه برای چی اینقدر ناراحتی جواب میگه که باد عکسو از دستش برده. زنش هم جواب میده خب منتظر عاقبتش باش. از اون طرف ساریمون عکسو رو به قصر شاه میبره و به دروغ میگه قربان دختری که این عکس رو به من داده گفته بدم به شما و گفته باید با یه سپاه سی هزار نفری بیایی و منو ببری. بعد هم عکسو به شاه میده. شا وقت که به صورت دختر نگاه میکنه عاشقش میشه. سی هزار تا سرباز آماده میکنه و به صربون میگه که اونها رو باید به منزل دختر ببره. ساربون هم با سپاه راه میفته تا به قصر قشنگ میرسه. صبح که میشه سرباز و دور قصر رو محاسره میکنن. جوون از همه جا بی خبر از جابل میشه و میگه امروز میخوام برم شکار دیگه. زنش میگه. کار خوبیه برو اما جوون تا پاشو از خونه بیرون میذاره چشمش به اون همه سرباز میفته و بر میگرده و لباس شکارش از تنش در میاره. زنش میپرسه چطور شد پس چرا نرفتی؟ جوان میگه امروز حالم خوب نیست دل درد گرفته زن از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و همین که سربارزار رو میبینه میگه خیلی خوب پس امروز نوبت منه که برم شکار. زره میپوشه و شمشیر به دست می ره و به طرف سربازا حمله میکنه. که میشه صحی و سالم برمیگرده و سربازا رو شکست میده. ساربن که این می میبینه فوری به قصر شاه بر برمیگرده و میگه قربان. دختر میگه این سپاه کمه، باید زیادش کنی. این دفعه شو تا سرباز میفرسته. صبح فردا وقتی جوان بیدار میشه دوباره میگه میخوام برم شکا ولی باز هم از پنجره بیبینه که سربازای زیادی دور قصر رو گرفتن. باز میگه امروزم دلم درد میکنه. امروزم نمیتونم برم شکار. زن دوباره میره با سربازها رو شکست میده و صحیح و سالم برمیگرده خونه. اما با خودش میگه چه شوهر بی ای دارم. نباید برادرم رو معدس میدادم و با این جوان ازدواج میکردم. ساره دوباره بر میگرده پیش شاه و اون میگه که دختر راضی نمیشه. سپاه باید قوی تر و بیشتر باشه. شاه این دفعه 900 هزارت سرباز میفرسته. صبح روز بعد جوون از خواب بیدار میشه. به زنش میگه تا حالا تو شکار رفتی. این دفعه نوبت منه که به شکار برم. زنش تعجب میکنه. همین که جوون میره بیرون از پنجره نگاه میکنه. بینه که چجوری شوهرش داره شمشیر میزنه و داره مبارزه میکنه. قروب همه سربازه رو شکست میده. ساربون رو هم میکشه. به خونه برمیگرده. و زنش خیلی خیلی خوشحال میشه که شوهرش انقدر قوی و با جرعته. و اونها سالهای سال با خوبی خوشی با هم زندگی میکنن. امیدوارم که از این قصه خوشتون اومده باشه. تا قصه بعدی خدا کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه M-E-H-R-A-N-D-O-U-S-T-I نشانی ویبلاگ ما M-E-H-R-A-N-D-O-U-S-T-I نقطه B-L-O-G-F-A نقطه C-O-M مهران دوستی dotblackfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی